حال خون این دلان که گوید باز و از فلش خون خم که جوید باز شرمش از چشم می پرستان باد نرگس مستگر به روید باز جز فلاتون خم نشین شراب سر حکمت به ما که گوید باز هر که چون لاله کاسه گردان شد زین جفا رخ خون به باز نگو دلم چه قنچه اگر ساغری از لبش نبوید باز بس که در پرده چنگ گفت سخن ببرش موی تا نموید باز گرد بیت الحرام خم آفز گر نمیرد به سر به فوید باز